مسنویه معنویه مولوی برنامه نواد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 آن سگ در کو گدای کور دید حمله می آورد و دلقش می درید گفته ی را ولی دیگر شد مکرر بهر تاکید خبر کور گفتش آخران یاران تو بر کهندیندم شکاری سعید جو تو در کوه میگیرند گور در میان کوی میگیری تو کور ترک این تصویر گو شیخ نفور آب شوری جمع کرده چند کور کین این مریدان منو من آب شور می خورند از من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 مرغ مرده مزترن در وصل و بین خوانده ال قلب و بین اسبائی مرغ مردش را هر که شد شکار چون ببیند شد شکار شهریار هر که او زین مرغ مرده سربتافت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 موج طوفان هم اصابد کوز درد تنتنه جادو پرستان را بخورد گر اصاهای خدا را بشمارم زرق این فرعونیان را بردارم لیک زین شیرین گیای زهرمند ترک کن تا چند روزی می چرند گر نباشد جاه فرعون و سری از کجا یابد جهنم پروری فربهش کن آنگهش کش ای قصاب زان بی بیبرگند در دوزخ کلاب گر نبودی خسم و دشمن در جهان پس بمردی خشمن در مردمان دوزه خان خشم است خسمی بایدش تازیاد، ورنه رحیمی بکشدش پس بماندی لطف به قهر و بدی پس کمال پادشاهی کی بودی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 باش و آمیزش مکن با دیگران آب می خور زفرانا تا رسی زفرانی آن حلوا رسی در مکن در کرد شلغم پوز خیش که نگردد با تو او هم تب او کش تو به کردی او بکرد مودعه زان که ارز الله آمد واسعه خواست آن عرضه که از پهناوری در سفر گم می شود دیو و پری اندران بحر و بیابان و جبال منقطع می گردد اوهام و خیال این بیابان در بیابانهای او، ان در بحر پار یک تای مو، آب استاده که سیر استش نهان، تازتر خوشتر جوهای روان، کودرون خیش چون جان و روان سیر پنهان دارد و پای روان، مستمع خفته است کوتاه کن خطاب ای خطیب این نقش کم کن تو براب خیز بلقیسا که بازار است تیز زین خسیسان کسادفگن گریز خیز بلقیسا کنون با اختیار پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار بعد از آن گوشد کشد مرگان چنان که چو دزدایی به شهنه جان کنان زینخران تا چند باشی ن دزد گرهمی دزدی بیا و لل دزد خوهرانت یافته ملک خلود تو گرفته ملکت کور و کبود ای خنک آن را که این ملکت بجاست که اجل این ملک را ویرانگر است خیز بلقیسا بیا باری ببین ملکت شاهانو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 کی گمشوی شبی ای خوش‌خصال چون که عین تو را شد ملکمال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 بردگر اطفال خنده آیدش که چه می کردم، چه می دیدم در این خل ز اکس هرس بنمود انگبین آن بنای انبیا به هرس بود زان چنان پیوسته رونق نقها فزود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 لیک در بناش هر و جنگ نیست نه کتب مثل کتب دیگران نه مساجد شن نه کسب و خانمان نه عدب شن نه غضب نه نکال نه نعاس و نه قیاس و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 برنامههای های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش نوکتاش و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردند.